سرانجام وقتی آخرین مهمان ها هم رفتند، همراه مادر و خانم جون راه افتادم که برگردم خانه. محترم خانم گفت. محمد رفته مهمان ها رو برسونه. کجا میری؟ سب کن الان میاد. حالا چه اجاله داری؟ با عذر خواهی خستگی را بهانه کردم و گفتم. راه که دور نیست. من با این لباسا خیلی معذبم. الان برم که صبح تر بیام کمک. برگشتم به خانه، سرمایی که دوباره در آن مسافت کم به جانم ریخت، حالم را بدتر کرد. پیش خودم فکر کردم حتما سرما خوردم، لرزی که به جانم افتاده بود حالم را بدتر کرد. خسته و خورد بودم، حتی حوصله نکردم موهایم را باز کنم. اولین لباس گرمی که دم دستم بود، یادم از پلیور محمد بود. پوشیدم و در حالی که دندانهایم از لرزی شدید به هم میخورد زیر لحاف از هوش رفتم نمیدانم چقدر گذشته بود که با و آرام دست محمد بیدار شدم مهناز، مهناز، چی شده؟ در حالی که در گرمایی سوزان دست و پا میزدم چشمهایم را باز کردم محمد لحاف را کنار زده بود و چراغ روشن بود با چشم‌های تبدار نگاهش کردم چقدر گذشته بود کی آمده بود یک دستش روی پیشانیم بود و با دست دیگر نبزم را گرفته بود انگار با خودش حرف بزند عصبی گفت مثل کوره داره می‌سوزه لحاف را کاملا کنار زد و بیرون رفت و من بیحال چشمهایم را بستم دوباره از احساس سرما و صدای مادرم چشمهایم را باز کردم. محمد دست مال خیس روی پیشانیم گذاشته بود و مادر نگران در حالی که دستم توی دستش بود صدایم می زد. مهناز، پاشا مامان پاشا این قرصو بخور؟ محمد پرسید، مادر، امروز حالش خوب بود؟ تا شب که چیزیش نبود؟ حالا اگه آدم بگه اون لباس مال این سرمانیس ناراحت میشه. صبحم با اون موهای خیس از هموم در اومد و رفت بیرون. با این هوا سرما خورده. خانم جون که از سر و صدا بیدار شده بود و آرام نزدیک میشد پرسید: چی شده مادر؟ نمیدونم خانم جون. داره توی تب میسوزه. خانم جون با لحن آرام همیشگیش گفت: هول نشین مادر، هیچی نیست. گیش مش برو فورفوری تخم مرغ دور سرش بچرخون. یه صدقه هم بزار زیر سرش. حالا خوب من یک سره بهش آیه خوندم و فوت از کی این طوری شدی مادر؟ محمد جای من جواب داد. من که اومدم خواب بود از صدای نالش بیدار شدم دیدم تب داره. بعد نگران گفت: مادر ببریمش دکتر. خانم جون گفت: ننه نصف شب توی این برف حالا کو دکتر؟ مادر گفت: آره مادر، باید صبر کنیم تا صبح. فقط کمکش کن بشینه پاهاش رو بذاریم توی آب، تبش بیاد پایین. الان قرص هم اثر میکنه. محمد کمکم کرد و نشستم. پاهایم که توی آب سرد رفت، یک دفعه انگار آرامش به تنم برگشت. ولی چند لحظه بعد دوباره لرزی بی امان به جانم افتاد که هیچ جوری آرام نمیشد. صدای محمد را بی قرار و عصبی شنیدم. مامان، لحاف رو دورش بپیچین. میبرمش دکتر. نه مادر جون یکم صبر کن الان آروم میگیره. نترس، سرمایی سخت خورده. تا صبح هم دو سه ساعت بیشتر نمونده. بعد هم با این لرز که نمیشه بردش بیرون لرز آرام آرام کمتر شد و من بی حال نفهمیدم که خوابم برد وقتی چشمهایم را باز کردم هوا روشن بود و احساس می‌کردم گلویم از سوزش و درد به هم چسبیده با صورتی دردناک نیم خیز شدم و چشمم به چشمهای سرخ از بی‌خوابی و صورت خسته محمد افتاد که با لبخندی مهربان دستش را روی پیشانیم می‌گذاشت گفت، حالت بهتره، تب که داری ولی مثل دیشب نیست. برم برات یه لیوان شیر بیارم بخور بریم دکتر. من که با یاداوری دیروز و دیشب ناخداگاه هایم توی هم رفته بود بدون اینکه جواب بدهم دوباره سرم رو, رو روی بالش گذاشتم و رویم را رو به طرف پنجره کردم. آرام صدایم زد. جواب ندادم. دوباره صدایم کرد. خانم بداخلاق، با شما بودم. با لحنی قهرآلود و صدایی گرفته گفتم. بداخلاق منم یه اونی که بی خودی داد میزنه. در حالی که می‌خندید گفت. <تصفيق> اینقدر ناراحتی که نمیشه صبر کنی؟ دکتر رو بیای حالت بهتر بشه بعد قهر کنی. دلم برایش صرف می‌رفت. دلی با همون لحن قهرآلود گفتم نه خیر نمیشه با صدای خسته گفت خیلی خوب، پس گوش کن رو تو برگردون تا برات بگم بدون اینکه رویم را برگردانم گفتم میشنوم، بفرمایید با لبخندی که روی صدایش اثر میگذاشت نفس عمیقی کشید و گفت من میخوام با خودت حرف بزنم، نموهد. خندم گرفت. در حالی که سوزش گلویم همچنان سخت آزارم میداد گفتم. نه، صورتی که باعث بشه آدم فریاد بزنه و در رو به هم بکوبه نبینی بهتر. هنوز حرفم تمام نشده بود که با دستهایش مثل یک بچه چرخاندم و وادارم کرد بنشینم. در حالی که مثل همیشه بدون اینکه بخواهم از قدرتش لذت میبردم و در عین حال از درد هایم که از تب و لرز درد می کرد ناله بلند شده بود نشستم. را دورم پیچید و گفت: تقصیر خودته. حالا مثل یک دختر خوب گوش کن. خیلی خوب، حق با شماست. من اشتباه کردم. به خاطر اینکه زود قضاوت کردم. حالا هم معذرت میخوام. خیلی هم معذرت میخوام ببخشید. ولی باور کن اصلا اختیاری نبود. وقتی تو رو اونجوری دیدم نفسم بند اومد. اصلا نمیتونستم. یعنی هیچ وقت نمیتونم تحمل کنم تو همچین لباسی بپوشی. از تصور اینکه لباس تنها اون باشه و دیگران تو رو اونطوری ببینن اصلا نفهمیدم چه کار کردم. با ناراحتی گفتم. دیگران کی بودن همه یه مش زن بودن به فرض که لباس تنها حرفم را قطع کرد و با شگفتی گفت منظورت از اینکه همه زن بودن چیه؟ مگه قرار بود کس دیگه ای باشه؟ این خودخواهی غیرت دوست داشتن زیاد یا تعصب هرچی که دوسته اسمشو بذار ولی اینو یادت باشه نه حالا نه هیچ زمانی دوست ندارم کسی تو رو اونجوری ببینه. میتونی بفهمی؟ ولی با این همه چون زود قضاوت کردم معذرت میخوام. قبول؟ آها راستی یادم رفت بگم. لباستون بی نهایت قشنگ بود. وقتی موقع عیس انداختن آمدی توی اتاق بوه زد. باورم نمیشد اون خانم کچوله عصبانی که دیگه حتی نیم نگاهی هم حاضر نبود بهم بکنه. خانم خوشگل خودمه. بعد در حالی که به شوخی گونه را نیشگونی آهسته میگرفت گفت خب خانوم خانوما من هم از خستگی تنم خورده هم دلم برای شنیدن صدای شما بی نهایت تنگ شده هم می خوام زودتر ببرمتون دکتر بالاخره نمیخواین خواهید رأی دادگاه رو صادر کنیم تکلیف این بنده گناهکار معلوم بشه دوستش داشتم چقدر فقط خدا میدانست. حرفهایش دلم را به آتش میکشید و برای آقوشش بیقرار قرار میکرد، و خوب معلوم بود که رأی به قول او دادگاه چیست و این قهر هم با پایانی خوش شد خاطره ای عزیز برای قلبه به زنجیر کشیده من ولی سرمایه سختی که خورده بودم و با تشخیص دکتر معلوم شد آنژین است سه روز تمام بستریم کرد و توی آن سه روز آنقدر محمد به من محبت و توجه کرد که صدای امیر در اومد. بابا اینقدر لوسش میکنی مریض شدن به دهنش مزه میکنه هفته دو سه روز مریض میشه ها. محمد خندید و خانم جون در جوابش گفت. ما ببینیم شما که زنگ گرفتی وقتی مریض شد چه کار میکنین به محمد آقام یاد میدین. امیر خندان گفت. زن من مریض بشه. مگه من عقلم مثل محمد کمی که زن نازک نارنجی بگیرم؟ محمد قبل از اینکه من چیزی بگویم فوری گفت: در اینکه خانم شما پهلوان هستند که حرفی نیست. امیر یک دفعه لبخند روی لبش ماسید و در حالی که چش قرهی غضبناک به محمد میرفت در جواب خانم جون که با کنجکاوی فراوان میپرسید مگه شما خانم ایشان را میشناسین؟ با تنه و هرس گفت نه بابا شوخی میکنه در مقایسه با زن این معلوم بقیه په دیگه بعد هم فوری از اتاق بیرون رفت و من و محمد را با خنده ای از ته دل و خانم جون را با نگاهی مشکوک و کنجکاف باقی گذاشت یاد آن روزها به خیر امیر راست میگفت مزه آن مریضی هم برای همیشه توی ذهن من ماند محبت و مهر بینهایت نهایت فروزان است که زمستان، سرما، قصه، قهر، دعوا و حتی مریضی در پرتو گرمای آن دلچسب و گوارا می شود